به نام خدا کتاب افسانه های پریان مترجم رویا سلیمی مرند ارائه شده در کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط بنفشه داستان سوم تام شستی یکی بود یکی نبود زمان ها که غولها و آدمخورارها و حیولههایی هایی به شکل انسان وجود داشت، زندگی مردم فقیر خیلی سخت میگذشت. اونا زمین نداشتند. صبح به صبح وقتی از خواب بلند میشدند، گروسنگی یا سرما یا هردوی اون انتظارشونو میکشید. مثل هیزم شکن فقیر قصه ما که با زن و هفت فرزندش زندگی میکرد. همه بچه های هیزم شکن به جز آخری دو قلو بودند بچه آخری خیلی کوچیک و استخونی بود طوری که پدرش می گفت این کوچولوی ریزمیزه به اندازه شست دستمه برای همین همه او رو تامشستی صدا می کردند پدر و مادر تام صبر کردند تا او هم مثل بقیه بچه ها بزرگ بشه تام رشد کرد اما خیلی کم با اینکه سنش زیادتر شده بود همونطور کوچیک مونده بود از همه مهمتر اینکه وقتی دوغلوها شروع به صحبت و پچ پچ میکردند تام کمتر از بقیه حرف میزد و سعی میکرد بیشتر گوش کنه پدر و مادر بزرگش میگفتند تام زیاد حرف نمیزنه اما خیلی باهوشه هیزمشکن و همسرش باید سخت کار می کردند تا سرپناه و غذایی برای بچه ها تهیه کنند که گرسنه نموند و سرما و گرما در امان باشند یک سال محصول از بین رفت و قهطی اومد اون سال سال سختی بود فقط ثروتمندان می تونستن غذا تهیه کنند شکن و همسرش خیلی ناراحت بودند اونا نمی دونستن چه کار باید بکنند شکن با ناراحتی به همسرش گفت نمی تونم گرستنگی بچه ها رو ببینم همسرش هم سری تکان داد و گفت منم همینطور اما چه کار می تونیم بکنیم ما که پول نداریم کمی با هم صحبت کردند تا هیزم که هیزمشکن تصمیمی گرفت بعد به همسرش گفت اونا رو با خودم به جنگل میبرم و اونجا رهاشون میکنم شاید سرنوشت بهتری پیدا کند همسرش که خیلی ترسیده بود فریاد زد اما تو هرگز چنین کاری نمی کنی نمیتونی اونا میمیرن و تو خیلی زود پشیمون میشی هیزم شکن گفت بهتر از اینه که اونا رو گرسنه ببینم چون اگه اینجا بمونن حتما از گرسنگی میمیرن زن هیزمشکن دیگه نتونست جوابی بده گریه کرد و گفت اما اگه کچولوهای عزیزمونو تو جنگل رها کنی گروه ها اونا رو میخورن یا در باتلاق میفتن و قلب منو تو میشکنه اما هیزم شکن اونقدر بحث رو ادامه داد تا بالاخره همسرش قبول کرد که اگر بچه ها رو به جنگل ببرن ممکنه زنده بمونن اما در خونه فقط مرگ در انتظارشونه از این جهت تصمیم گرفتند صبح روز بعد این کار را انجام بدن. اونها حتی یه لحظه هم به ذهنشون نمی رسید که تامشستی ممکنه صحبتاشون رو شنیده باشه. وقتی هیزم شکن گفته بود که میخواد درباره یه بچه ها صحبت کنه، تام تامشستی از تخت پایین اومده بود، و رفته بود به اتاق و بدون اینکه کسی متوجه بشه روی زمین خزیده بود و زیر صندلی پدرش قایم شده بود. تام صبر کرد تا پدر و مادرش بخوابند. بعد از خونه خارج شد و یک کیسه سنگ سفید جمع کرد که زیر نور ماه درخشیدند. روز بعد وقتی پدرش اونا را به جنگل برد تام ها رو یکی یکی مینداخت تا راه رو گم نکنند. وقتی خورشید کاملا بالا اومد، هیزوم شکن فکر کرد به اندازه کافی از خونه دور شدند. به بحانی جمع کردن هیزم، بچه ها رو به اطراف فرستاد، بعد هم با دلی پر از غم اونا رو ترک کرد و به خونه برگشت. وقتی بچه ها فهمیدند که تنها هستند و پدرشون اونا رو رها کرده، خیلی ترسیدند. دو قلوها زدن زیر گریه و ناله کردند و گفتند، وقتی شب به گرگا بوی ما رو میفهمن و میان و ما رو میخورند. اما تام اوار آرام کرد و گفت: «من راه خونه رو بلدم دنبالم بیایید. تام شستی از جلو و دوقلوها از عقب به راه افتادند. سنگریسه ها را دنبال کردند تا به در خونه رسیدند. از داخل خونه صدای فریاد می اومد، فریادهای بلند پدر و مادرشون داشتن با هم دعوا میکردند. جریان از این قرار بود که وقتی هیزم شکن بچه ها رو در جنگل به دست سرنوشت پرده بود و به خونه اومده بود روی میز آشپسخونه ده سکه یه دید همسرش گفت این پولیه که شهردار به ما بدهکار بود و ما فکر میکردیم دیگه پس نمیده اما حالا چقدر خوب شد که پس داده شکن پول رو برداشت و به بازار رفت و کمی غذا و نوشیدنی برای خودش و همسرش خرید اما همسر هیزمشکن نمیتونست چیزی بخوره چون یاد بچههاش میفتاد زن گفت برای بچهها غذای کافی داریم اما حالا خیلی دیگه دیر شده اونها یا از سرما یخ زدن یا خوراک گوری ها شدن. چه پدر و مادر نادونی بودیم؟ چرا همچین کاری کردیم؟ گفتم که نباید این کارو می میکردیم و پشیمون میشیم شکن گفت بله بله میدونم همسرش ادامه داد گفته بودم میدونستم پشیمون میشیم هیزمشکن گفت کافیه کاریه که شده شکن آنچنان فریادی میزد که دیوارهای کلبه لرزیدند همسرش هم شروع به گریه کرد زن همینطور که گریه میکرد میگفت بچه هام عزیزام دیگه اونا رو نمیبینم بچه ها نمیتونستن غم و غصه مادرشون رو ببینن بنابراین داخل شدند و گفتند مادر ما اینجا هستیم صحیح و سالم هیزمشکن و همسرش از دیدن بچه ها خیلی خوشحال شدند و اونا رو در آغوش گرفتند و غرق بوسه کردند بعد هم مادرشون اونا رو پشت میز نشوند و بهشون غذا داد پدر و مادر با خوشحالی غذا خوردن بچه ها رو نگاه می کردند اما شادی اونا خیلی طول نکشید وقتی آخرین سکه هم خرج شد باز هم گرسنه موندند زندگی براشون سخت و تلخ شد و شکن و همسرش دوباره ناامید شدند هیزمشکن باز دید که نمی تونه رنج گرسنگی بچه ها رو تحمل کنه به همسرش گفت قبل از اینکه بچه ها پیش چشمام از گرسنگی بمیرن اونا رو به جنگل میبرم همسرش داد: ولی اونا دوباره راه خونه رو پیدا میکنند هیزم شکن گفت این بار اونا رو به عمق جنگل میبرم دیگه نمیتونن راه برگشت رو پیدا کنن هر جا به برن میتونن برن اما دیگه نمیتونن راه خونه رو پیدا کنند زن گفت من میدونم اونا کجا میرن داخل دهن گرگ ها. گفت، "شاید. اما اگه اینجا بمونن حتما میمیرن. سرانجام همسرش قبول کرد در حالی که برای گرسنگی فرزندانش ناراحت بود. میدونست که شاید خطر جنگل کمتر باشه. اما تام این بار هم همه چیز رو شنید. یه بار دیگه صبر کرد تا پدر و مادرش بخوابند و رفت طبقه پایین و فکر کرد که دوباره سنگریزه جمع کنه. اما در قفل بود. تام ناراحت نشد چون به خطر عادت داشت. هر روز و هر لحظه باید تمام هوش خودشو به کار میبرد تا زنده بمونه. اگر نه مثل یک مگس زیر دست و پای خواهر و برادرش له می شد. بارها با یک جهش خودشو از زیر پایی که پایین میومد کنار کشیده بود و جان خودشو نجات داده بود. تام شستی میدونست که اگه فکرشو به کار بندازه این بار هم می تونه راهی پیدا کنه. بعد از مدتی فکر کردن راه حلی پیدا کرد صبح روز بعد پدرش گفت بچه همرام بیاین میخواییم بریم جنگل و چوب جمع کنیم مادرشون با چشمان قرمز و گریان آخرین تکه باقی مانده نان رو بین بچه ها تقسیم کرد بچه ها اونو سریع خوردند اما تام نان خودش رو نخورد بلکه اونو تکه تکه کرد و برای علامت گذاری تکه های نان رو روی زمین انداخت این بار هیزم شکن صبر کرد تا خورشید غروب کنه بعد خیلی آهسته راهونه خونه شد به محض اینکه ها فهمیدن پدرشون اونا رو در تاریکی و در سرمای شب رها کرده خیلی ترسیدند تام شستی گفت ناراحت نباشید من راه خونه رو پیدا می کنم. اما وقتی به دنبال نشانه ها گشت اثری از اونا ندید پرنده ها تکه نونا رو خورده بودند برای چند لحظه تام تامشستی از ترس لرزید اما فکر کرد که درختها بلندند و اگه بالای بلندترین اونا بره شاید بتونه از اون بالا خونه ای رو ببینه جاسه کوچک او کمک می کرد که راحت از درخت بالا بره وزنی نداشت بنابراین شاخه ها نمی و او می تونست از بالاترین نقطه درخت دوردست ها رو ببینه در دور دست چراغی سوسو میزد؟ تام فکر کرد شمعی ای روشنه و شم یعنی وجود خانه و خانه یعنی وجود مردم وقتی تام پایین اومد دیگه نمیتونست روشنایی رو ببینه به بچه ها گفت مهم نیست فکر می کنم همین مسیر بود اگرچه تام شسی خیلی از خواهر و برادراش کچیکتر بود اما از جلو می رفت و اونا دنبالش می اومدن خیلی زود از دور روشنایی شم و شبه کلبه رو دید. بچه ها خیلی خسته بودند اما با شادی به اون طرف دویدند. چند دقیقه نگذشته بود که فهمیدند اون خونه خونه یه آدم خاره. خوشبختانه آدم خار بیرون بود و همسرش در رو باز کرد. تامشستی با التماس گفت خانم خواهش میکنم بگذارید داخل بشیم همسر آدمخوار فریاد زد خدای من چیکار کنم همسرش خوب خوب میشناخت هیچ چیز به اندازه بچه های کوچیک اونو خوشحال نمیکرد و میدونست که اگه همسرش بیاد بچه ها رو میکشه و میخوره اما نمیخواست با گفتن این حرف بچه ها رو بترسونه در عین حال نمیتونست اونا رو با وجود سرما و گرگ بیرون در نگه داره گفت بیای تو همسر آدم خار بچه ها رو کنار آتش برد تا گرم بشن و براشون غذا آورد بعد گفت حالا زیر تخت خایم بشید تا صبح که شوهرم از خونه خارج بشه چند دقیقه بعد همسرش داخل شد و فریاد زد زن زن شام من کجاست؟ زن به سرعت پاسخ داد دارم میارم و گوسفندی رو به سیخ کشید و گذاشت روی میز خوب نپخته بود و هنوز از اون خون می اومد اما آدم اینطوری دوست داشت در یه چشم برهم زدن با دندانهای بزرگ آدم خاریش اونو تکه تکه کرد بعد همینطور که نشسته بود بو کشید و گفت بوی موجود زنده میاد همسرش گفت باید بوی همین گوسفند باشه آدمخار گفت این گوسفند مرده این اینو رو میشناسم و میدونم که درست میگم بینیش رو به سمت تخت برد آدمخار زیر تخت رو نگاه کرد و تامشستی و خواهر و برادراشو پیدا کرد با دیدن اونا فریاد زد زن تو میخواستی منو گول بزنی همسرش به من افتاد گفت من من فکر میکردم چون برای شام گوسفند داری دیگه نمیخوای چیزی بخوری آدمخور گفت واقعا؟ ولی من این لقمه های رو دوست دارم آدمخور خور سریعا چاقوش رو برداشت اما همسرش فکری کرد و گفت گوسفند رو که داری تموم میکنی منم یه خوک و یه آهو برات درست کردم بهتر نزاری هدر بشه چرا بچه ها رو برای فردا نمیذاری؟ آدمخار سرش رو داد و گفت فکر خوبیه و قبل از اینکه نظرش عوض بشه همسرش به تامشستی و بچه ها گفت که دنبالش برن اونا رو برد بالا به یه اتاق خواب بزرگ با دو تا تخت بزرگ روی یکی از اون هفت هفتا دختر خوابیده بودن اونا دخترای آدمخار بودن هر کدوم کلاه خوابی با حلقه از طلا به سر داشتند در خواب به نظر معصوم میرسیدند اما بیشتر خون پدر در رگهاشون جاری بود تا خون مادر با این کتاب تا به حال گوشت انسان نخورده بودند اما میتونستند از همون لحظه هم شروع کنند میتونستند با دندانهای خودشون اونا رو تکه تکه کنند تخت دوم خالی بود همسر آدم گفت زود بیاید اینجا من باید برگردم پیش شوهرم چه حالا که سیر شده بودند و جای گرم و نرمی برای خواب پیدا کرده بودند، راحت به خواب رفتند. اما تام شستی بیدار موند. در هر صورت به آدمخوارا اعتماد نداشت. مطمئن نبود که نظر آدمخوار عوض نمیشه و تا شب تمام نشده اونا رو نمیکشه. تام شستی با خودش زمزمه کرد: من برادر و خواهرام رو به چنین جایی آوردم، بنابراین باید ازشون مواظبت کنم، به هر قیمتی شده. شونه خالی نمیکنم، این کار رو می کنم. تام به آرامی از تخت پایین اومد و کلاه خواب دخترا و حلقه تلایی سر اونا رو برداشت یکی رو برای خودش نگه داشت و بقیه رو به سر خواهر و برادراش گذاشت بعد منتظر نشست شنید که آدم خار و همسرش میرن به اما شنید که آدم خار بلند شد و به راه رو اومد و در باز شد سایه آدم دید که چاقوش رو بلند کرده بود آدم زمزمه کرد معتقد به بخت و اقبال نیستم وقتی تنور داغه باید نونو چست این شعار منه بهتر بچه ها رو همین الان بکشم و ممکنه که فردا فرار کنند ممکنه فردا کسی اونا رو نجات بده یا ممکنه آدم خار دیگه ای بیاد اونا رو به آدم خم شد روی اولین تخت و وقتی دستش با یه حلقه طلا برخورد کرد عقب اومد. یکی یکی همه ی حلقه ها رو لمس کرد. واقعا هفت حلقه بود. با خودش گفت یه لحظه مونده بود نزدیک بود دخترام رو بکشم. به سمت تخت بعدی حرکت کرد. این بار تعمال نکرد. گلوی بچه ها رو که خابیده بودند که بچه های خودش بودند برید. در حالی که نمی اونا دخترهای خودشند و سپس به اتاقش برگشت به بس اینکه که آدم خار رفت تامشستی خوهره و رو بیدار کرد و گفت سریع پاشین فوری باید فرار کنیم بچه های یواش یواش نرم و سبک مثل باد به سمت جنگل دویدند دویدند و دویدند صبح روز بعد آدم خار برای خوردن صبحانه آماده شد منتظر دختراش نشست وقتی اونا نیومدن، رفت بالا تا اونا رو بیاره. به محصه که آدم خار در رو باز کرد، فهمید چه اتفاقی افتاده. هورشی از تعصف و درد کرد و فریاد زد، چکمه های هفت قلم رو, رو بیار. همسر آدم خار اونقدر از کاری که شوهرش با دخترا کرده بود ناراحت بود که از زور گریه نمیتونست جایی رو ببینه. اما چکمه جادویی رو آورد و آدمخار خار اونا رو پوشید و خیلی عصبانی از خونه خارج شد تا تام تامشستی و خواهر و برادراش رو پیدا کنه آدم خار با عصبانیت می گفت اونا رو شکار می کنم و می آدمخار اونقدر عصبانی و در عذاب بود که نمی داره کجا میره ره بی هدف این ور اون ور می رفت. با چکمه های از رودخونه ها می پرید و از کوه بالا می رفت. نیمه های روز بود که تامشستی و خواهر و برادراش خیلی اتفاقی خونه خودشون پیدا کردند اما هنوز به خونه نرسیده بودند که آدم خوار رو دیدند. تامشستی فرمان داد سریع تو این غار پنهون بشید. آدم تقریبا بالای سرشون بود اما نمیدونست به شکارش نزدیک شده. بنابراین نشست که استراحت کنه. با چکمه های جادویش میتونست قدم های بلند برداره و فاصله زیاد رو خیلی سریع طی کنه اما اونا تمام انرژی و قدرت او رو میگرفتند و خیلی خستش میکردند قدم از خستگی خوابش برد سرش افتاد روی سینه و خورخورهای رعداساش بلند شد طوری که همه درخت های جنگل میلرزیدند تامشستی به خواهر و برادراش گفت: عجلی کنید برید خونه اونا گفتن تو چه کار میکنی؟ تام پاسخ داد نگران من نباشین میدونم چه کار میکنم موفق میشم دقالوها به گفته او عمل کردند تام تامشستی از آدمخوار خوابیده بالا رفت چون خیلی کوچیک بود سر و صدایی نداشت انگشتان کوچیکش نرم و لطیف بودند تام تامشستی بند چکمه های هفت قلم روی آدمخوار رو باز کرد اما آدمخوار هیچ حرکتی نکرد برای مرحله بعدی شاید تامشستی کوچیک بود اما ارادش به او قدرت ده مرد بزرگ را میداد یک دو چکمه های بزرگ را از پای آدم خار بیرون آورد و به پای خودش کرد چکمه های هفت قلم رو با جادویی که داشتند اندازه پای تامشستی شدند و او با چند قدم خود را به کلبه خار رسوند تامشستی به همسر آدمخار گفت که خانم از طرف شوهرتون یه خبری دارم. به همسر آدمخار گفت که دوست شوهرش را گرفتند و اونا برای آزادیش همه طلا و چیزهای با ارزشی که دارند خواستند. زند رنگ نکرد. درسته که شوهرش آدمخار بود اما به روش آدمخاری دوستش داشت و زن نمیتونست بذاره او رو بکشند. کیف بزرگی از طلا طلاهای نقشدار چینی، چاقوها و چنگالها، آشغهای تلا و هر چیز با ارزشی که دم دستش بود به تام شستی داد. تام با قدرتی از اراده همه اونا رو برداشت و با چکمه جادویی، جادوی با دو قدم به خونه برگشت و اونا رو جابجا جا کرد. وقتی آدم بیدار شد و دید که چکمه هاش رو دزدیدن به طرف جنگل رفت. با قلبی شکسته که چرا دختراش رو کشته به دنبال دوست هم میگشت وقتی به خونه برگشت فهمید که یه بار دیگه از کسی که از زانوهاش هم گول خورده بیشتر از قبل ناراحت شد همسرش سعی کرد او رو آروم کنه اما خودش هم خیلی غمگین بود از اون به بعد برای هر اونا هر روز با ناراحتی صبح میشد اما تامشستی و خانوادش خوشبخت شدند. با طلای آدمخوار پدر زمینی خرید تا در اون زراعت کنند و گرسنه نموند.